خانش توسط بنفشه این داستان دختر یخی در زمانهای خیلی خیلی دور، روزگاری در ناحیه سردسیر هوکایدو واقع در شمال ژاپن مرد جوانی به اسم نوبارو زندگی می کرد. یه روز صبح وقتی که میخواست به سر کار بره همین که در رو باز کرد دید داره برف میاد و چندین قطع یخ توی درگاهی در خونه است. او مشغول تماشای یخ شد و حس کرد که به شکل انسانهای درخشنده هستم با خودش فکر کرد چه زیبا اگه این یخها آدم بودن با یکی از اونها ازدواج میکردم. بعد از این فکر مثل همیشه به محل کارش رفت. وقتی به خونه برگشت، هنوز داشت برف می اومد. اون شب یه شب تاریک و شدیدن طوفانی بود. جوان میخواست به رخت خواب بره که تصور کرد یه صدای زربه ای به در شنیده. با خودش گفت، حتما اشتباه کردم و این صدای باد و طوفانه. اما لحظه ای نگذشت که دوباره صدای زربه ها رو به در شنید. رفت و در رو باز کرد. از دیدن دختری در پشت در متعجب شد. دختر با خواهش گفت لطفاً به من کمک کن من توی این هوای سرد یخ میزنم اجازه بده بیام تو وگرنه از سرما یخ میزنم و میمیرم. دختر انقدر از سرما میلرزید که نوبارو دلش به رحم اومد و بهش اجازه داد وارد خونش بشه. بعد بهش تاروف کرد که بره و کنار آتیش بشینه. اما اون دختر قبول نکرد و گفت وقتی آدم این همه توی هوای سرد و یخ بندون مونده، نباید فوراً بره کنار آتیش و حرارت. او یه گوشه از آشپزخونه رو انتخاب کرد و همونجا به یه خواب سنگین فرو رفت. صبح روز بعد نوبارو از خواب بلند شد. فکر می کرد اون چه شب قبل اتفاق افتاده همش خواب بوده. اما همین که بوی برنج پختر رو حس کرد متوجه شد خواب نبوده. و شب پیش واقعا دختری به خونش اومده و او رفع خونه و دختر رو که داشت آشپزی میکرد دید هم خوشحال شد هم تعجب کرد دختر گفت حتما گرسنه هستی من برات غذا درست کردم امیدوارم ازش خوشت بیاد نوبارو از اون غذا خورد و خیلی هم خوشش اومد طولی نکشید که به اون دختر علاقمند شد و بهش درخواست ازدواج داد از اون به بعد ترز زندگی نوبارو کاملا تغییر کرد. حالا غذاهای خوب میخورد، غذاهای مفید، لباس خوب و مرتب میپوشید چون همسر خوبی داشت که به همه کارهای خونش میرسید. از همه مهمتر دیگه مجبور نبود غذا بپزه چون همسرش آشپز خیلی خوبی بود. نوبارو میدید که او همیشه با قاشق‌های مخصوص چوبی و بلند که خودش درست کرده بود آشپزی میکرد. موقع آشپزی هم از اجاق و حرارت فاصله می گرفت و با اون قاشقای بلند غذا رو هم میزد و به حرارت آتیش نزدیک نمیشد. نوبارو این حالتشو میدید، اما هیچ وقت سوالی در این باره نمیپرسید. روزی دوست نوبارو با خانوادهش به خونه اونا اومدن. پسر اونا که یه بچه شیتون بود رفت و آشپزخونه و همین که چشمش به اون قاشقای چوبی بلند افتاد، اونا رو برداشت و برد حیات عقب خونه و جایی قایمشون کرد عصر که شد نوبارو از همسرش خواست تا کمی ساکی براشون گرم کنه زن به آشپسخونه رفت و دنبال قاشوهای مخصوص خودش گشت تا با اونا ساکی رو هم بزنه اما هر چه گشت نتونست قاشوها رو پیدا کنه نوبارو فریاد زد چرا اینقدر طول میدی؟ من فقط دو فنجان ساکی ازت خواستم زن جواب داد یکم سب کن الان میارم زن بازم به دنبال قاشقای مخصوصش گشت به اتاق زیر شیروونی رفت توی انبار داخل زرفای بزرگ همه جا رو سر زد اما حتی وسیلهی که شبیه اون قاشقا باشه پیدا نکرد نوبارو دوباره فریاد زد میشه بگی چه اتفاقی افتاده؟ زن که دیگه نمیدونست چه کار باید کنه و به شدت ترسیده بود به اجاق نزدیک شد و سعی کرد ظرف رو با دستاش از روی آتیش برداره اما سوخت. جیغ کشید و کمک خواست نوبارو دوید به آشپسخونه اما دیگه دیر شده بود هیچکس کس توی آشپسخونه نبود فقط لباس کیمونوی همسرش نزدیک اجاق افتاده بود در واقع همسر او یه دختر یخی بود و با اینکه مادرش بهش سفارش کرده بود به آتیش نزدیک نشه ولی او به خاطر اخلاق همسرش و ترس از او و به خاطر اطاعت از کارایی که میخواست انجام بده با دستاش گرما رو لمس کرده بود و آب شده بود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 همه و همه و همه در کانال تگرامی هزار افسان داستانهای های افسانهای صوتیسانین مهران دوستی،